گرامیان درود بر شما فایل آوایی دوم از کتاب فیزیولوژی ایمان نوشته نون فخر رو با هم آغاز می‌کنیم صفحه 19 عنوان آیا واقعاً کسی در ذهن ما حضور دارد واقعیت برای ما چیست آنگاه که اطمینان داریم یک شیء واقعی در مقابل ما قرار دارد چگونه به این باور رسیدیم اشیای اطراف ما روی گیرندههای حسی ما اثر میگذارند و موجب ایجاد پیامهای عصبی می گردند. این پیامها وارد مغز می‌شوند و محصول پردازش آنها تصویر یا تصوری در مغز ما خواهد بود ما بر آن تصویر یا تصور نام واقعیت می نهیم. ما از یک طرف بدون تشکیل تصویر و تصور در مغز از واقعیت بیرونی بیخبر میمانیم از طرف دیگر، اگر تصویر یا تصوری واضح در ذهن ما شکل بگیرد حتی اگر ما به ازای خارجی نداشته باشد باز هم آن را واقعیت میپنداریم. مثل پدیده توهم یا رویایی که در خواب میبینیم کسی که دوچار توهم میشود اصرار دارد که چیزهایی واقعی را میبیند و یا صداهایی واقعی را میشنود. همچنین وقتی خواب میبینیم در واقعی بودن آنچه می بینیم شک نداریم. در هر دوی این حالات تصاویر و تصورات صرفاً ساخته و پرداخته مغزمان هستند. خود مؤمنین ادعا می کنند به حضور آن موجودات ما ایمان دارند. حال ببینیم شواهد و مدارک علمی در مورد تصور وجود موجودی دیگر در ذهن ما آنگاه که ایمان دینی داریم چه نشان میدهند و حضور این موجودات ماورایی تا چه حد برای ما واقعی است اندرو نیوبرگ عصبشناس و از پیشروان شناسی خداباوری یا نوروتئولوژی با استفاده از تصویربرداری اسپکت یا سینگل فوتون میشن کامپیوتر توموگرافی به بررسی مغز صدها نفر در میان مراسم عبادتشان پرداخت او در اوج عبادت افراد مورد آزمایش، ماده‌ای رادیواکتیو اما بی خطر را وارد جریان خون آنها می‌کرد. این ماده در حین عبادت به نقاط مختلف مغز که بیشترین جریان خون را داشت، جاری می‌شد. تصاویر تهیه شده الگوی فعالیت لوب فرونتال و نیز بخش های مربوط به زبان و مکالمه در مسیحی ها و یهودیها که در حال گفتگو و راز و نیاز با خدایشان بودند را نشان میداد که مطابق با الگوی فعالیت همین بخش در مغز کسانی بود که واقعا در حال گفتگو با یک شخص واقعی هستند. در عبادت و مدیتیشن بوداییان که به گفتگو با خدا نمی پرداختند، بلکه روش عبادتشان مبتنی بر درک حضور یک هستی مطلق بود مناطق بسری مغز فعال می شد. فعالیت مغز افراد آتیست و بی ایمان در هنگام تعمق و مدیتیشن شبیه فعالیت مغزی هیچ کدام از دارندگان ایمان دینی نبود و این در حالی بود که از آنها خواسته شده بود به خدا فکر کنند. لوب پیشانی آنها فعالیتی نداشت در حالی که وقتی حضور کسی را حس کنیم و با او به گفتگو بپردازیم پردازیم پیشانی فعالیت بیشتری دارد. پس برای دارندگان ایمان دینی برخلاف ateist ها خدا چیزی فراتر از یک تفکر یا نتیجه گیری منطقی و فلسفی صرف است خدا برای آنها شخصیتی به همان اندازه واقعی است که بقیه شخصیت های مقابلشان واقعی هستند یا حداقل می توان گفت زمانی که با آن خدا ارتباط برقرار می چنین است آنها با این شخص وارد گفتگو میشوند و با او درد دل می کنند و به او التماس می کنند و گاهی با او بحث و جدل می کنند و به او اعتراض می کنند و یا با او قرار و مدار میگذارند یا معامله می کنند و حتی پای قرارداد و معاملاتشان با او می و به عهدشان وفا می کنند آنها ذره ای در وجود او و حضور او و آگاهی او بر محتوای ذهنشان و بر جریان افکارشان شک ندارند. پس ظاهرا می توان فرض کرد وقتی انسانی داستان انسان دیگری مبنی بر وجود یک موجود ماورایی که از محتوای ذهنی انسان ها آگاه است را میشنود و باور میکند، از آن زمان واقعا یک ذهن دیگر را آگاه بر افکار و احساسات و امیال خود می‌یابد. می‌توانیم بگوییم از آن پس اولین نگهبان ذهن در مغز او تعبیه شده است و بعداً تعداد موجودات ماورایی با ویژگی نگهبانی از ذهن میتواند افزایش یابد. اینکه باور کنیم چه کارهایی از دست نگهبان ذهن برمیآید و چه خلق و خویی دارد از چه چیزهایی خوشش میآید و از چه چیزهایی بدش میآید با مشاهده هر اندیشه و احساس ما دوچار چه عواطفی می شود و چه اکسل عملهایی دارد آسانگیر است یا سختگیر خوی باثبات دارد یا دمدمی مزاج است اهمیت می دهد یا بی تفاوت است مهربان است یا بیره آشق است یا خطا همگی بسته به آن است که گوینده داستان او چه گفته باشد و یا افراد قابل وسوق و مطلع مثل روحانیون بعدا چه اطلاعات بیشتری از آن نگهبان ذهن به ما ارائه دهند وقتی ما خود را در اتاقی تنها بدانیم به گونه ای عمل می کنیم ولی وقتی به حضور کس دیگری نیز در اتاق باور داشته باشیم به گونه ای دیگر عمل می کنیم مغز ما به شکل ناخداگاه های ما را متناسب با اینکه خود را در اتاق تنها بدانیم یا حضور فرد دیگری را هم در اتاق مفروض بدانیم تنظیم کند حال باید ببینیم های بخش بخش‌های مختلف مغز ما به حضور این نگهبان چه خواهد بود؟ در بخش بعدی سعی می کنم نشان دهم چگونه بخش های مختلف مغز ما از آن موجود نامرئی حاضر و ناظر یک نگهبان مقتدر میسازند و اصلاً چرا از کلمه نگهبان استفاده کردم و به کلمه شاهد یا ناظر اکتفا نکردم. عنوان فرمان مغز در دست قدیمی‌هاست. یکی از بهترین الگوهای شناخته شده برای درک عملکرد مغز الگوی تکاملی مغز است. پل مکلین، عصبشناس، این الگو را در دهه 1960 ارائه کرد. مدل مکلین مغز ما را به سه مغز مختلف تقسیم می‌کند که به ترتیب در طول میلیون‌ها سال یکی پس از دیگری به وجود آمدند و تکامل یافتند و هر کدام به دیگری اضافه شدند. قدیمیترین بخش مغز ما مغز خزندگان است که شامل ساقه مغز و مخچه ماست ما این بخش مغز از 400 میلیون سال پیش در حیوانات تکامل یافته است در واقع تا حدود 200 تا 250 میلیون سال پیش مغز جانداران حد اکثر شامل همین بخش بوده و هنوز بخش‌های فوقانی و پیشرفته‌تر به آن اضافه نشده بود این بخش از مغز ما عملکردهای بسیار حیاتی مثل تنظیم ضربان قلب، فشار خون، تنفس، دمای بدن، تعادل در حرکت، تحریک جنسی و نیز انجام واکنش به عوامل تهدیدکننده حیات شامل جنگیدن و فرار کردن را برعهده دارد. اعمال این بخش از مغز بسیار دقیق و قابل اعتماد است اما تا حد زیادی خارج از کنترل ماست. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم کنترل ما در دست این بخش از مغز است. وقتی اطلاعات دریافت شده از حواس ما که اتفاقاً پیش از همه وارد این بخش از مغز می شود و مورد تیزی و تحلیل قرار می گیرد. نشان دهد که چیزی جان ما را تهدید می کند، این بخش از مغز کنترل را به دست می گیرد و بسته به اینکه کدام استراتژی را بهتر بداند دستور به فرار یا حمله می دهد، و خودش تقریبا تمام حرکات مربوط به فرار یا حمله را بدون نیاز به هیچ محاسبه کند و زمانوری از سوی قشر مغز با سرعت بالا تراهی کرده و اجرا میکن. اگر ناگهان یک اغرب در مقابل خود ببینیم پیش از اینکه شروع به اندیشه کنیم که آیا این اغرب سمی است یا نه؟ آیا واقعی است یا پلاستیکی؟ آیا این موقعیت جدی است یا شوخی است که توسط اطرافیان تراهی شده، دستور واکنش سریع از سوی مغز خزندگان ما به اجرا در می آید. مثلا از جای خود می پریم و از اخرف فاصله می گیریم. میزان پرش و جهت حرکت نیز آگاهانه محاسبه نمی شود. اصلا وقت محاسبه نداریم با اطلاعاتی که از قبل در مورد محل استقرار خود و اشیاء اطرافمان در مغز ذخیره شده سریع ترین پردازش برای تعیین جهت. و مسیر فرار و اکس و سریع بعدی صورت میپذیرد. در زمانی که مغز خزندگان ما تصمیم به جنگ بگیرد، قشر مغز را که قبلا تصمیم گرفته بود هرگز و در هیچ شرایطی حرف زشت نزند و برخورد فیزیکی نکند، از کار میاندازد. آنچنان که هیچ چیز از این تصمیمات در آگاهی آن لحظه ما یافت نمیشود و فهش دادن و درگیری فیزیکی را آغاز میکند. بخش بعدی مغز که در پستانداران بر بالای ساقه مغز قرار دارد و بین 150 تا 250 میلیون سال برایش قدمت قائلند، سیستم لیمبیک است که به آن مغز پستانداران هم گفته می شود. این بخش با همکاری ساغه مغز عواطف و احساسات را به وجود می آورد. به این صورت که اطلاعات از حواس ما وارد ساغه مغز و سپس ناحیه لیمبیک می شود. و تجزیه و تحلیل این اطلاعات توسط این نواهی منتهی به هیجانات و احساسات و عواطف و امیال گردند. دستگاه لیمبیک در بهخاطر سپردن اطلاعات رسیده نقش مهمی دارد اما این فقط اطلاعات بیمعنی نیستند که ذخیره میشوند اطلاعات بسته به اینکه چه تأثیر حسی و عاطفی بر ما داشته باشند در دستگاه لیمبیک معنا پیدا میکنند اینکه رفتارمان چه بازخورده لذت بخش یا دردآوری برای ما داشته باشد همراه با آن لذت و یا آن درد به کمک مغز لیمبیک ما ذخیره کردند. پس یکی از وظایف مهم مغز لیمبیک یا مغز پستانداران معنا دادن به اطلاعات ورودی از حیث احساسی و عاطفی آنچه میبینیم یا می‌شنویم یا حس میکنیم مهم است یا بیاهمیت خوب است یا بد. زیباست یا زشت. دوست داشتنی است یا نفرت انگیز. ترسناک است یا دلانگیز ممکن است هر روز همسایه را ببینیم و این دیدار هیچ معنای خاصی برای ما نداشته باشد. اما یک روز او را میبینیم در حالی که چاقویی در دست دارد و به کسی دیگر ناسزا میگوید و او را تهدید میکند. حسی از ناامنی و ترس در ما به وجود میآید. این صحنه همراه با احساس ناامنی همراهش در مغز ما ذخیره میکرد، بعد از آن هر بار که این همسایه را می بینیم حس ناامنی و ترس نیز در ما فراخوانی می شود. از حالا به بعد دیدن چهره این همسایه برای ما دارای معنی است و ما نسبت به او خالی از قضاوت و بی تفاوت و بیاحساس نیستیم. علاقه به فرزندان و حس پیوندمان با دیگران نیز مربوط به لیمبیک است مدارهای مربوط به جایزه و لذت هم در دستگاه لیمبیک جایی دارند میتوان گفت امیال ما مثل میل به یک غذا میل به خوشگذرانی با دوستان عشق به دیگران، نفرت از دیگران، تمایل به مصرف مواد مخدر و این قبیل و نیز قضاوتهای اولیه در مورد دیگران از دستگاه لیمبیک سرچشمه می گرند. از جمله بخش‌های اصلی لیمبیک می‌توان به تالاموس، هیپوتالاموس، قُدّه هیپوفیز، آمیگدال یا بادامه، هسته اکومبنز و ناحیه تگمنتوم شکمی اشاره کرد. بخش جدیدتر مغز ما از نظر تکاملی قشر مخ یا نئوکورتکس یا مغز انسانی است. که به آن مغز پستانداران جدید هم میگویند که حدود دو تا سه میلیون سال قدمت دارد. بخش مختلف قشر مخ وظایف مختلفی دارند. پردازش اطلاعات حسی تهیه نقشه فضایی از دنیای بیرون کنترل حرکات ارادی سخن گفتن، فکر کردن نقش کشیدن و طراحی تخیلات. حل مسئله کنترل بروز عواطف و احساسات و تصمیم گیری آگاهانه از جمله وظایف قشر مغز است. جدیدترین قسمت از قشر مخ بخش پیش پیشانی آن است که حدود 500 هزار سال قدمت دارد. خیشتنداری، منطق، آگاهی، فکر کردن به آینده، انتخاب استراتژی و نیز اخلاق به فعالیت های آن وابسته است. بخش پیش پیشانی تا دهه بیست زندگی در حال رشد و تکامل است. مدارهای مغز ما بگونه ای تکامل پیدا کردن که بخش های جدیدتر بیشتر در خدمت بخش های قدیمیتر مغز و تحت کنترل آنها هستند. مثلا قشر پیش بیشتر از لیمبیک تاثیر می‌پذیرد و کمتر روی آن تاثیر می‌گذارد وقتی رشته‌های عصبی که از دستگاه لیمبیک به قشر پیش پیشانی می‌آید آن را از کار می‌اندازد اجتناب از امیال و رفتاری که لیمبیک به ما دیکته می‌کند ساده نخواهد بود تقویت قشر پیش پیشانی در طول زندگی می تواند به افزایش خیشتنداری و بهبود مهارت های زندگی بیانجامد. اما ما در مجموع در کنترل بخش های مغز خود هستیم و مداوما از مهارت های قشر مغزمان یعنی از اندیشه زبان حرکات ارادی اعضای بدن قابلیت طراحی و حتی منطق خود در جهت محقق ساختن امیال و خواسته های بخش های قدیمی تر مغز خود مثل میل به حمله، فرار، عشق ورزی، فرزند پروری، قضا خوردن، انتقام، دوستی، پذیرفته شدن در گروه، پیروزی، جایزه گرفتن، مصرف مواد مخدر استفاده میکنیم. اگر بپرسید اینکه مغز ما به این شکل عمل میکند خوب است یا بد؟ در پاسخ میتوان گفت تا اینجا که همین شیوه عمل کرده مغز نه تنها حیات و ادامه نسل گونه انسان را موجب شده بلکه ظاهرا ما را در موقعیت برتر نسبت به دیگر حیوانات قرار داده است. اما رابطه این شیوه عمل کرده مغز انسان با ایمان دینی چیست؟ عنوان قداست گفتیم بخش های کوهن مغز یعنی ساغه مغز و دستگاه لیمبیک مسئول امیال و احساسات و عواطف ما هستند و در اوقات مقتضی کنترل را به دست میگیرند و قشر مغز نیست که ظاهراً آگاهی و قدرت تصمیمگیری آگاهانه ما محصول عملکرد آن است غالباً در خدمت محقق کردن امیالی است که از بخش‌های کهن مغز سرچشمه اند. معمولا هیچ منطق و حساب و کتابی نمی‌تواند یک مادر را متقاعد کند که مادری نکند و فرزندش را دوست نداشته باشد. وقتی عاشق می‌شویم، اعمال، شخصیت و تسمیمگیری هایمان دگرگون می‌شود و به خدمت عشق در می آید. وقتی حس حسادت در ما برانگیخته می‌گردد، منطق ما در خدمت توجیه افکار و اعمال غیر اخلاقی ما قرار میگیرد. هنگام شروع حس نیاز و تمایل به مصرف ماده مخدر افیونی یا اوپیوئید که از ناحیه تگمنتوم شکمی مغز لیمبیک سرچشمه میگیرد، تمام قول و قرارهایی که برای ترک مواد مخدر به خودمان داده بودیم را فراموش می کنیم. در این شرایط زور قشر پیش پیشانی ما به سیستم لیمبیک نمیرسد و تنها کاری که قشر مغز ما انجام می دهد این است که راهی برای تهیه و مصرف مواد مخدر پیدا کند. ممکن است وقتی تنها هستیم تصمیم بگیریم که در صورت مواجهه با یک فرد قلدور در مقابلش بیاییم و او را ادب نماییم. اما وقتی با آن قلدر مواجه می شویم اطلاعاتی که از ظاهر و قد و قواره او به مغز ما می رسد ابتدا وارد بخش های مغز ما می شود و در آنجا پردازش می گردد و از این بخش هاست که حس لازم مثلا ترس و دستورات لازم مثلا سکوت و عدم انجام هر اقدام تحریک کننده صادر می گردد و تمام تصمیمات قبلی را کنار می‌گذاریم تا به سلامت از صحنه خارج شد. ممکن است اصلا یک لحظه هم به اینکه که چه تصمیم گرفته بودیم فکر نکنیم و تمام هم و همان باشد که بخشهای کوهن مغز ما برای مان تعیین می کنند. حال اگر باور کرده باشیم که یک موجود ماورایی و نامرئی وجود دارد که از مکنونات و محتوای ذهن ما و آنچه در سر ما می گذرد و هر فکر و خیال و نیت ما آگاه است نمی توانیم بدون ملاحظه ی حضور او در ذهنمان به راحتی به هرچه میخواهیم فکر کنیم. ممکن است گاهی بر روی بعضی افکار چنان متمرکز باشیم که حضور او را فراموش کنیم. اما به محض یادآوری اینکه او در جریان افکار ما قرار گرفته، اینکه ممکن است عکس عمل او به افکار ما چه باشد می و ای بسا حتی از او بابت افکارمان عذرخواهی و توبه کنیم از لحظه‌ای که به ما گفته شود آن موجود ماورایی ما را تحت نظر دارد به صورت خودکار ذهنی که برای او فرض می‌کنیم یک ذهن دارای خصوصیات ذهن هر انسانی مثل خودمان خواهد بود بر اساس ویژگی نظریه ذهن، پیش فرض ما از ذهن دیگران این است که لابد مثل ذهن ما دارای حالات مختلف توجه، خشم، مهربانی، حسادت، لجبازی، رودربایستی قابلیت فهم معنی کلمات و جملات، دیدن، شنیدن، ترس، امیدواری، ناامیدی و از این قبیل هستند. مگر اینکه آن داستانگویی که موجود ماورایی را به ما معرفی کرده، را از بعضی خصوصیات روانی ما انسان ها آری نشان داده باشد. مثلا گفته باشد او هرگز خشمگین نمی شود و یا او را باجد خصوصیاتی متفاوت با ذهن خودمان معرفی کرده باشد. اگر در تعریف و توصیف آن نگهبان ذهن گفته شده باشد که از بعضی افکار ما خوشش نمی آید و مثلا دوست ندارد ما در وجود او شک کنیم، این مسئله را در افکارمان لحاظ خواهیم کرد. اگر به ما گفته شده باشد در صورتی که کسی در وجود او شک کند و در همان حال شک از دنیا برود، راهی جهنمی پرعذاب و ابدی خواهد شد، تعجبی ندارد که بخش های کهان مغز اجازه فعالیت شناخت انتقادی درباره وجود او را به قشر مغز ندهند و جلوی هر شکی را بگیرند باید توجه داشته باشیم که اگر او را ترسناک و بیره توصیف کرده باشند معنا و مفهوم ترسناک بودن او مثل هر احساس و عاطفه دیگری در جایی بجز مغزهای کهن ما شکل نگرفته است پس با یاداوری حضور او همان بخش‌های کهن که حالا میدانند با چه موجودی طرفند کنترل همه چیز را به دست می‌گیرند از غذا معمولا کسانی که داستان آن موجودات ماورایی را برای ما می‌گویند و روحانیون آن دینی که در آن پرورش می‌یابیم نمی‌گویند آن موجودی که از افکار و محتویات ذهن ما آگاه است دوست دارد هر چه بیشتر در وجودش و درستی یا نادرستی احکام و دستوراتش شک کنیم و آزادانه و پیوسته با نظرات انتقادی به رشد فکری خود کمک کنیم بلکه آنها او را ذاتی معرفی میکنند که ایمان را از شک بیشتر دوست دارد و از شک و تردید در وجودش و در مورد درستی دستوراتش عصبانی و خشمگین میشود و یا حداقل ناامید و مغموم میگردد و ترهی برای انتقام از افراد بی ایمان دارد انتقام از آنها که شک می کنند و حاصل تفکرشان ایمان به او نیست. به این ترتیب خدای حاضر و ناظر مؤمنین مانعی در رشد شناختی طبیعی آنها ایجاد می کند در حالت طبیعی بچه که به والدین و اطرافیانشان اعتماد دارند با رسیدن به سن نوجوانی مشاهده می کنند که از طرفی جستشان هم اندازه والدینشان شده و از طرف دیگر والدینشان هم اشتباه می کنند و لزوما همه چیز را نمی دانند. آنها متوجه می که اعتبار یک سخن از اینجا نمی آید که از دهان پدر و مادرشان بیرون آمده وگرنه گاهی حرف پدر و مادرشان غلط از آب در نمی آمد. آنها به این نتیجه می رسند که باید به دنبال معیارهای دیگری برای ارزیابی یا درست و غلط باشند. پس شروع به استفاده از معیارهای دیگر می کنند و مخالفت و بحث و جدل با پدر و مادر آغاز می شود. در این بحث آنها به تمرین مباحثه و نقد می پردازند و این بخشی از روال طبیعی رشد شناختی نوجوانان است. اما این روال معمولا شامل اعتقادات دینی و ایمانی نمی شود. اگر باور کرده باشیم که آن موجود ماورایی و نگهبان ذهنمان بعضی اشیا را دوست دارد، نسبت به آن اشیاء احساس احترام خواهیم داشت و آنها را اشیایی معمولی نمی پنداریم. رفتار ما با آن اشیا شبیه رفتار ما با اشیای مشابه و همجنس آنها نخواهد بود. با دیدن آن اشیا، ساغه مغز و دستگاه لیمبیک ما که زودتر از قشر مغز ما اطلاعات دیداری را بررسی و پردازش می کنند حس احتیاط و احترام و ترس را در ما برمی تا مبادا نگهبان ذهنی حاضر و ناظر را ناراحت کنیم ما متوجه می به محض برخورد با آن چنان تغییر حالتی در ما ایجاد می‌شود که گویی تحت تأثیر حیبت آن شیء قرار گرفته ایم و ممکن است این خصوصیت را به خود آن شیء نسبت دهیم. به اینکه نمی‌توانیم آن شیء را مانند دیگر اشیاء ببینیم و نمی‌توانیم رفتاری عادی و بیخیال نسبت به آن داشته باشیم، تقدیس می‌گوییم. ما آن شیء را مقدس می‌دانیم. نه چون به ما گفته شده مقدس است، بلکه چون به ما باورانده شده که این شی نزد نگهبانی که در ذهن ما حضور دارد عزیز و گرامی است همانطور که در حضور پدر و مادر یک کودک مراقب رفتارمان با آن کودک هستیم چرا که میدانیم آن کودک نزد پدر و مادرش عزیز است در حضور دائمی نگهبان ذهنمان مراقب افکارمان نسبت به آن شیء مقدس نیز هستیم و به همین دلیل از کلمه نگهبان برای نامیدن آن ذهن ناظر بر ذهن خودمان استفاده کردم. شغل یک نگهبان ایجاب می کند که او علاوه بر نظارت بر اطراف در صورت لزوم و طبق تشخیصش وارد عمل گردد و جلوی آنچه نباید بشود را بگیرد. حاصل جمع باور به ذهنی که ناظر بر محتوای ذهن ماست. و اکسل عملهای های ویژه مقصدهای کهن ما به این باور موجب می شود اجازه ظهور و بروز به هر اندیشه ای داده نشود و کنترلی همچون کنترل نگهبانان بر ذهن و احساس و اندیشه و اعمالمان آغاز گردد اگر باور کنیم که آن موجود ماورایی یک انسان را دوست دارد و آن انسان مورد حمایت و تایید اوست دیگر نمی توانیم نسبت به آن انسان همان افکار را داشته باشیم که نسبت به انسانهای دیگر داریم معمولاً این اتفاق وقتی میافتد که داستانهایی معجزه آمیز از آن انسان گفته شود و معجزاتی به او نسبت داده شود که از هیچ انسانی بر نمی آید و فقط با کمک آن موجود ماورایی است که آن انسان میتواند دست به آن معجزات بزند مثل اینکه بگویند آن انسان وقتی به دنیا آمد حرف زد یا راه رفت یا مرده را زنده کرد یا کوه را شکافت. از زمان باور به این داستانهای موجز آمیز دیگر نمیتوانیم در حضور آن نگهبان ذهن به سخنان و عملکرد آن انسان به دیده انتقاد و شک نگاه کنیم. یعنی هر آنچه آن شخص انجام دهد و هرچه بگوید از دید ما درست و غیر قابل شک خواهد بود اگر در دین ما گفته شده باشد که آن شخص معصوم از خطاست، او را معصوم می‌دانیم اگر هم در دین ما گفته نشده باشد که آن شخص معصوم از خطاست، باز هم در ذهن خود او را معصوم می‌دانیم گرچه به زبان بگوییم او معصوم نیست به این ترتیب که نه تنها در درستی کردار و گفتار او شک نمی‌کنیم بلکه سعی میکنیم هر انتقادی نسبت به رفتار و گفتار او را رد کنیم و اعمال و سخنان او را به هر نحوی توجیه کنیم یعنی باز هم بخش های کوهن مغزمان جدیدترین بخش مغزمان را به خدمت میگیرند تا دلایلی موجه برای هر عمل و سخن آن شخص محبوب نگهبان ذهنمان دست و پا کنند نمی توانیم نسبت به او همان رفتار و همان طرز فکر و شیوه برخورد را داشته باشیم که نسبت به دیگران داریم. دستگاه لیمبیک و ساقه مغز ما به ما چنین اجازه ای نمی دهند این یعنی آن انسان برای ما مقدس است. اگرچه به زبان اعتراف نکنیم که چنین است. ممکن است هرگز تصمیم نگرفته باشیم آن شخص را وارد فهرست مقدساتمان کنیم. مسئله این است که تصمیم‌های آگاهانه و ارادی ما توسط قشر مغز گرفته می‌شود حال آنکه تصمیم به پرهیز از هرگونه شک و نقد نسبت به آن شخص توسط مغزهای قدیمی ما و بنا به دید آنها گرفته و اجرا می‌گردد و آنها در این باب کنترل همه چیز را در دست دارند و برای قشر مغز هم تعیین تکلیف می‌کنند یعنی تصمیم به تقدیس یک تصمیم غیر ارادی است و خارج از اختیار ماست به همین ترتیب اگر مجموعه ای از گفتارها یا کتابها و یا دستورات و احکام را از سوی آن موجود ماورایی و قاهر بدانیم آنها هم برایمان من غیر قابل شک و انتقاد خواهند بود و به دایره مقدسات من اضافه می شود. اگر کسی به ما بگوید فلان کار خاص اخلاقی است ممکن است با تفکر نقاد به چون و چرا بپردازیم و با اندیشه آزاد به نقد گفته او اقدام کنیم. اگر همان شخص بتواند به ما بباوراند همان موجود ماورایی که از محتوای ذهن ما آگاه است، به انجام آن کار خاص دستور داده است، دیگر هیچ تفکر انتقادی و چون و چرایی در ذهن ما اجازه ظهور و بروز نمیابد. شاید ادعا کرده باشیم هر حرفی را فقط بعد از نقد و ارزیابی میپذیریم و شاید واقعا همیشه همین شیوه را رعایت کنیم. اما بخشهای کوهن مغز ما در مواجهه با سخنان و دستورات و احکام آن نگهبان درون ذهنمان ملاحظات لازم در مورد پرهیز از خشمگین کردن او و عواقب عصبانیتش را در نظر گرفته و سیستم تفکر نقاد ما را خاموش میکنند اما ساقه مغز و سیستم لیمبیک ما فقط از قدرت خشم و انتقام آن نگهبان زن حساب نمیبرند و دلایل دیگری نیز دارند تا مانع از نقد و ارزیابی ایمان دینی شوند در ادامه به آنها میپردازیم گرامیان همینجا در صفحه 31 فایل آوایی دوم از کتاب فیزیولوژی ایمان رو به پایان میبریم تا درودی دیگر بدرود